دو قطه شعر کوچک است که دو تا شعر کوچک و یک شعر بزرگ اگر که بیهوده زیباست شب برای چه زیباست شب برای چه زیباست شب و رود بی انحنای ستاره که سرد می‌گذرد و سوگواران درازگی سوبرد و جانب رود یاد آورد کدام خاطر را با قصیده نفسگیر قوکان تعذیتی می کنند به هنگامی که هر سپیده به صدای هم دوازده گلوله سوراخ می شود اگر که بی زیباست شب برای که زیباست شب برای چیزی باست